جامعه اسلامی، جامعه است که از لحاظ جنبه‌های مادی اگر به اسلام عمل بکنه در کل قرار خواهد گرفت، بدون تردید. از لحاظ علم، از لحاظ صنعت لازم، از لحاظ معیشت، از لحاظ روابط اجتماعی، از لحاظ عزت و شرف دنیایی و عمومی و ملی و بین المللی، در عوض قرار میگیره. اما این همه ای کارها نیست این همه هدفها ای نیست اگر زندگی ما در دنیا زندگی خوبی باشد اما لحظه مرگ ما لحظه بدبختی و روسیاهی ما باشد چه فایده داره؟ امام سجاد علیه السلام در دعای سجادیه میفرماید امتنا غیر محتدین طائعین غیر غیرمستقرهین میگه فروردگارا من رو در حالی از دنیا ببر و بمیران که هدایت یافته باشم گمراه نباشم من رو در حالی از دنیا از این نشعه ببر که من با تو و با تو و چه کسی با تو و از این گذرگاه عبور میکند؟ کند؟ اون کسی که به اون طرف خاطر جمع است می دید جوانهای ما جوانهای اون روز شما تو میدانهای جنگ چگونه بی وارد ارسوهای های می همین عملیات هایی که ذکر کردم چه در منطقه ایران، چه در منطقه موزستان، چه در منطقه خسانه های این جوان ها کجا ها رفتن، چه کارها کردند، کردن، مرد رو تحقیل کردن، خطر و کوچک شمردن، دل اینها با حقای آشنا شده بود. انسان وقتی اون طرف را ببیند اون نعمت را ببیند از اون طرف خاطر جمع باشد راحت زندگی میکنه راحت فداکاری میکنه راحت بر مشتلات صبر میکنه راحت قدم در وادی های خطر میگذاره و پیش میره مسئله اینجاست ما اگر بخواهیم در مقاصد دنیوی هم پیروز بشویم بایستی ایمان خودمون رو، اعتقاد خودمون رو، عمل خودمون رو برای اون سوی مرز مردن تقویت کنیم امیر المومنین من میخواهم مردم رو به بهشت برسانم این وظیفه ماست نه از منکر باید بکنیم، امر و باید بکنیم، وسائل عمل خیر و حسنات را در کشور فراهم هم کنیم، وسائل شروع و آفات را از دست ها برداریم، این وظائف مسئولین حکومت است.